به خوش‌مودیه و رامزا و با اندیشه و گفتار و کردار نیک در بخش پیشین از باور گفتم به چند شواند یک آنکه باور پایه و اساس جهان و همان است که آفریننده اندیشه و گفتار و کردار ماست و این جهانبینی است که دین ما رو شکل میده و بارونش هم میشه گفت و این یا اینکه دین است که ما رو شک میده و هر دو یکی هستند. دو آنکه گذره از این گامه همانا شناخت سامان باوری درون خیش و خواستگاهمون و خلند یا تأثیری که بر زندگی ما میگذرد نخستین گام برای خودشناسی است پس از آن است که انسان می تواند به گامی خود آزادی و خود رهایی برسد تا خود رو از آن آلودگی های باوری و اندیشه و روانی برهاند تا در آزادی و با آگاهی به گامه خودآفرینی برسد و هر آنجا که خود می‌خواهد بیافریند این سه گامه خودشناسی خودرهایی و خودآفرینی روندی است که انسان می‌تواند هر از چند گاهی خود رو از آن گذر بدهد و از آلودگی هایی که گاه بیگاه به درون رخنه می کند خود رو برهاند و این می توانم بگویم که روند رسائی یا تکاملی انسان آگاه است در این مورد همانا چگونگی رفتن این راه و روش ها و ابزارهایی که براش هست اگر کسانی هستند که دوست دارند بیشتر بدانند و آگاه بشن در کنار این گفتگوها و آموزشها میشه براشون که جداگونه گذاشت اگر که خواستار اون باشند بگذارید در همینجا در آغاز سخن پایان رو من بگویم و چند تا چیز رو روشن کنم یک آنچه یک آنکه که هر آنچه من در این سخنان میگویم و خواهم گفت برداشت من باور من و گزینش من از روی همین از آموزه هایی است که از نخست آموزگار اجزتوشت و همچنین در فرهنگ ریشهای و نیاکانی اهورای ما بر مونده و اونها رو من با آزمون خود از زندگی آزمودم و با سنجی دانش تا آن جایی که دانشم پرگانه میدهد سنجیدم و برگزیدم و انچنان که برای خودم دریافتنی است می تا به شما هم نشان دهم. بنابراین من این داو یا این ادعا را ندارم که زبان گویای عشوزرتشت و داننده و آگاه به همه بم اندیشه های ایشان و سخنان ایشان از درون گاته ها هستم مانند بسیاری که آنچنان میگویند و می نویسند که انگار خود فرهر اشوزرتشت به خوابشان آمده و گفته است که چنین است و چنان است بیان این که من برداشت خودم رو میگم نشان خودخواهی و یا خودبزرگبینی نیست بلکه به باور من نشان پذیرش خویشکاری و پاسخگویی یا مسئولیت است و من پاسخگوی اندیشه و گفتار و کردار خیشم هرچند هران که گفته میشه در چهارچوبه اندیشه ایران شهری و نیک دینی یا نیک نیست و پای در فرهنگ ایران زمین دارد شما نیز پیروب که نخستین آموزه های نخست آموزگار تاریخی که از دل هزارها ها به ما رسیده است بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید سپس هر کدام از شما برای خیشتن برگزید و انجام این رو هم گفته باشم که من برای گفتن این سخنان نه از جایی و کسی و گروهی نمایندگی دارم و نه آنکه خود دعا به اون رو دارم خب دوستان اکنون آرام آرام گفتگوی گفتگویه آنچه با برنامه ها یا عنوان هایی دین بهی یا بهدینی نیک دینی نیک آینی دین مزده و یا زرتشتی می شود میشم و میکوشم تا گام به گام به پیش برم رواگ یا روالان است که از خود واجه دین بیاغازیم که من همچنین می کنم دین دگرگون شده واجه عوستایی دعنا می باشد. که چیم آن دیدن است دیدنی که به آن بینش میگوییم بینش بینش است نه با چشم سر بل با چشم درون یا بهتر بگویم با چشم خرد در اینا یا دین مینش یا مفهوم وجدان رو هم به خود گرفته امروز برخی بهتر می دانند که به جای دین واژه آین رو از جمله به کار ببرند چرا که این واژه و مینش دین در میان ایرانیان دگرگون شده و میشود گفت که آلوده شده بنابراین هر دو رو میشه به کار بار. با این نگرش که آین به گونه سنتی به رسمهای دینی یا بهتر بگویم فرهنگی گفته میشده و میشه هنوزم مانند آین سدر پوشی آین پیوکانی یا پیوند تا آین نوروز و و مهرگان و آین گهانبارها و جشتها و مانند اونها از من بپرسید من واژه بینش رو که همجای گفتم چیم راستین دعناس یا دین هست بهتر میدونم که به کار بردن اون هم گویای چیمش هست و هم بز بگوهای پیرامونون رها میشید پس از این پس من یا همان دین رو به کار بیبرم و یا بینش رو به گناه های نیکدینی بهدینی نیکبینی بهبینی و مانندون و البته در کنار همه اینها خب همون واژه زرتوشکی که از همه جا افتاده تر است و زیاد به کار برده خواهد اما واژه مزده یسنا رو هم داریم که بسیار کوهن است. و چیمه اون یسنا کنندگان مزداست. است. خب اینجا به دو کلیدواجه دیگر برمی کنیم. که همجا بازش می‌کنیم. یکی مزده است. مزدا نامی است. یه خودش رو بر بنیان آفرینش کذاشت. که میتوان دانش یا خرد بزرگ اون رو مانا کرد. و اهورا هم که به چم باشنده یا هستیدار و گای هستی هستیبخش هم گفته میشه به اون افسوده میشه و به گونه های اهورا مزدا یا مزدا اهورا هم خانده میشه روی هم خرد هستیبخش و جانبخش هستی خردمند جان خردمند و خداوند جان و خرد رو هم میشه به گفت یسنا از ریشه یزته هست که از سوی ستایش و بزرگداشت است و از سوی همان جشن گرفتن خودمان و شاد داشتن پس مزده یسنا همانا بزرگ خرد و زندگی است و جشن گرفتن خرد و زندگی و کسانی که چنینند رو مزده یسنی می نامند. خب اکنون که همه این برنامه ها رو برش مردم دوست دارم که یکی دیگر رو هم که شاید کمتر شری نمیشه اون رو هم بگم که همون واجه وهمنشی یا بهمنشی است که همان نیک است نیک است و اون هم از دیدگاه من زیبا و شایست است خب میبینیم آن چیزهایی که تاکنون نامشان آمد پیرامون هستی جان زندگی خرد دانش بینش راستی درستی نیکی خوبی و وجدان بوده است و نه چیزهایی از دست بهشت و دوزخ یا کفر و الهاد یا حرام و حلال یا معجزه و غیب و مانند اونها و من گمان میکنم همین برای شنوندهٔ آگاه بسنده باشد تا ناهمسانی میان دعنای ایرانی و دین ایرانی و آنچه که مورد نگرش و گفتگوی اونهاست دریافته باشد دیگر هر آنچه میماند فرهنگی است که پیرامون این سامان باوری و یا جهانبینی نیکمنشی تنیده و بر اساس اونها در زندگی گروهی انجام رفتار می شود در دعنای مزدی اصنی سخن از راست و درست و نیک زیستن است به آرمان ساختن جهانی نیک برای همه دامان دام در فرهنگ اوستایی همه جانداران گفته می شده است نه فقط نه تنها جانبران بلکه از آب و گیاه و جانور گرفته تا مردمان و همه زیست بوم و دورداشتن دروغ که کارش ویرانی و آزار همین دامان است این با مردمان نیک اندیش و خردمند هست که راه های چنین نیک جهانی رو بیابند خود با آنها زندگی کنند و همچنین در همبودگاه های خیش که روی همه اونها همبودگاه جهانی رو میسازد با همازوری و همپرسی و همجویی و همسازی آبادسازی کنند خب شاید بگوییم که این خیلی هم خوب است، خیلی هم نیک است. پس چگونه می شود که جهانی که ما در امروز به سر میبریم بسیاری از این آرمان های نیک به است و بدی در آنها بیداد می کند؟ که پاسخ اون رو خود میدانید و خود می توانید بیابید و بدهید و خیلی ساده است. می شود گفت که شوندش گسترش دروغ، به گونه های گونه و در زیر رخکهای گوناگون است باید آنها را یافت رخک از چهرها برداشت تا در زیر نور آفتاب راستی نمایان شوند و آب شوند مهند آن است که در این روند خود درگیر و فریب خورده چهره فریب کار و فریب آن نشود. که اگر چنین شود که شوربختانه در بسیاری موارد هم می شود باز نیروی دروغ است که بیافزاید. مهندترین ابزاری که دعینا یا وجدان نیک برای مرطوب و مردمان پیشنهاد می کند اخلاق است. اخلاقی که بر پایه داد بنا می شود و داد همان قانون و قانونمندی یا بربست و هنجار است هم هنجار عشا یا ارتا که پستر بیشتر در مورد سخن هم گفت و هم هنجار همبودی که با هم اندیشی و هم پرسی هموندان همبودگاه برپام شده اینجا نیازی دیگر پیدا می شود که این اخلاق و داد بیشتر باز بشود و هنجار عشاک بنیاد آنهاست در موردش بیشتر گفته بشه که گفتم خواهم گفت بگذارید همینجا یک مقوله با دیگر و مهنده دیگر رو هم نام که و اون مقوله آزادی است فرسه که همیشه و همه جا برای مردم پرسش اساسی بوده است آیا آزادی داشتنیست است گوهری است بخشیدنی است گرفتنی است مرزدار است است و پرسشهایی از این دست زمانی که اشار رو بررسی میکنیم آزادی رو هم در همین راستا بیشتر باز خواهیمه اکنون زمان آن رسیده که به آنچه که به بنیانهای بهدینی نامبرند بپردازیم و اونها رو بگشاییم همان هایی که با نامهای گوناگونی مانند همشاستپندان بنیانهای زندگانی ویژگی ها یا فروزهای های و همچنین هنجار یا قانونمندی رسایی و یا تکامل نامبر هستند که همه هم در جای خود درست و شایسته هستند و همه اینها فرزان یا فلسفه دین بهین رو شکفت میدن. بیگمان اونهایی که آشنایی های آغازین رو با این دین پیدا کردید و در مورد این بنیان ها شنیدید، خوندید، در اونها اندیشیدید که امیدوارم چنین باشد. حال یا اونها رو به درستی در زندگیتون به کار می بندید که شوهه خوشنوگی خودتون هست و یا آنکه تنها نامی از اونها برگرفته و یاد گرفتید و می توانید یک بازنمود یا تعریفی از اونها به دست بدید اما شاید در زندگی قیش نتونستید به درستی اونها رو به کردار بکشونید که البته می داند یک بهدین تمام و کامل بودن شاید که به این سادگی ها شدنی نباشد اما میتوان در آن راستا و به آن هدف و آرمان در زندگی جویا بود و پویا بود اکنون من اگه بخوام که هر آنچه که پیشنیان گفتند امروزیان میگویند و خود من هم در های گوناگون گفتم و نوشتم همه را باز بی کنم خب زمان درازی خواهد بود افزون برای آنکه گسترش رسانه های همگانی و دلبستگی و توجه هرچی بیشتر به این بینش و این دعینا سبب شده تا کسانی بیشتری در آن باشند و می و می آموزند و نیازی شاید به سخن پردازی بیش از اندازه نیست من میکوشم از آن رایی که شاید کوتاهتر و کوتاه و گویا باشد در مورد این بنیان ها یا اصول سخری با شما داشته باشن شکیما باشید تا گفتگوی آینده بدرود